شهشتوم مؤخره ترلکوفسکی نمرده بود هنوز جان در بدنش باقی بود و به آرامی از مقاکی بی انتها سر برمی آورد هرچه بیشتر به هوش می آمد، بیشتر به بدنش اشراف پیدا می کرد و باز می توانست درد را احساس کند دردی که همزمان از همه طرف به سوی او حجوم آورده و مثل یک سگ هار خودش را روی او انداخته بود. میدانست که دیگر هرگز نمیتواند از خودش مراقبت کند. آماده بود تا شکست را بپذیرد. اما مقاومتی که در وجودش بود او را گافل کرد. درد با سماجت ادامه داشت. اما بعد همچون موج عقب نشست تا اینکه دیگر اثری از آن نماند. ترلکوفسکی که انرژیش تحلیل رفته بود به آرامی به خواب رفت. صدای حرفهایی که در اطرافش جریان داشت او را از خواب بیدار کرد. بالاخره از کما در اومد. هنوز هم شانس زنده موندن داره. بعد از بلایی که سرش اومده، زنده موندنش به معجزه شبیهه. <تصفيق> میدونستید که تمام ذخیره خونو برای اون مصرف کردند؟ ترلکوفسکی با احتیاط یک چشمش را باز کرد. به سختی توانست چند شبه تار و نامشخص را ببیند. سایه های سفیدی که در یک اتاق سفید این وران ور میرفتند. به نظر می‌رسید که توی بیمارستان هست اما این شبه ها چه کسی حرف می‌زدند؟ خون زیادی ازش رفته خیلی شانس آورده که خونش از نوع نایاب نیست فکر نه؟ بهتر پاشو کمی بیشتر بلند کنیم اینطوری راحت تره تلرکفسی احساس کرد از فاصله بسیار دور یک نفر دارد یکی از پاهایش را بالا میکشد و این باعث شد احساس راحتی بیشتری کند. پس این چیزهایی که شنیده بود، آنها داشتن درباره او حرف میزدند. اما چرا طوری حرف میزدند که انگار او یک زن است؟ سعی کرد به این موضوع فکر کند. برایش خیلی سخت بود که افکارش را منسجم و متمرکز نگه دارد. چندین بار رشته افکارش از هم گسیخت و فراموش کرد چند لحظه قبل به چه چیز فکر میکرده. مغزش که در خلب دوران بیپایانی افتاده بود کم کم آرام میگرفت و بالاخره توانست رشته افکارش را در اختیار بگیرد. ابتدا فکر کرد شاید آنها دارن او را مسخره میکنند. شاید هم به خاطر لباسش او را زن تصور کرده بودند. آنها او را در نهایت بی ادالتی مسخره میکردند. آنقدر از دستش متنفر و خشمگین شده بود که دوباره بیناییش تار و ضعیف شد یک موج عصبی تمام وجودش را فرا گرفت و درد خفته را دوباره بیدار کرد خودش را در موجی از درد و رنج رها کرد کمی بعد احساس کرد حالش تا حدی بهتر شده حالا در یک اتاق سفید دیگر بود که به مراتب از اتاق قبلی بزرگتر بود هنوز حرکت کردن برایش غیر ممکن بود از همان زاویه دید کوچکی که در اختیار داشت توانست نگاه‌های کوتاهی به بقیه‌ی تختها که پیکرهای لمیده‌ای رویشان قرار داشتند بیاندازد. بعد ناگهان بی‌مقدمه اتاق پر شد از زنان و مردانی که بین تختها وول می‌خوردند. یک نفر جلو آمد و به تخت ترلکوفسکی نزدیک شد، آنقدر که صدای خشخش روزنامه‌ای که در دستش به خوبی شنیده می‌شد. بعد بسته‌ی را روی میز کوچکی که در سمت چپ تخت قرار داشت گذاشت. وقتی مرد کنار تخت نشست، ترلکوفسکی توانست قیافش را ببیند. بدون تردید، ترلکوفسکی دچار هزیان شده بود. باز جای شکرش بود که خودش این را و وگرنه ممکن بود به کلی عقلش را از دست بدهد. مردی که در مقابلش روی صندلی نشسته بود، مو به مو همزاد او بود. یک ترلکوفسکی دیگر که ساکت و محزون کنار تختش روی سندلی نشسته بود متعجب مانده بود که آیا واقعا یک مرد آنجا نشسته که تب شدیدش او به به ای از خودش تبدیل کرده یا اینکه کل این توهم دیداری صرفا محصول ذهن شکنجه شدهاش است احساس کرد هر طور شده باید از موضوع سر درآورد درد کاملا تحلیل رفته بود و ترلکوفسکی در یک خلع نرم و روان و خوشایند شناور بود به این میمانست که انگار به صورت کاملا تصادفی شکلی از تعادل را که خارج از فهم بشر بود کشف کرده است. عجیب آنکه چیزی که دیده بود به جای اینکه او را وحشت زده کند موجب قوت قلبش شده بود. تصویری که دیده بود همچون انعکاسی بود در آینه و همین موجب تسلی خاطرش میشد. آرزو می‌کرد خودش را اینطور در آینه ببیند. بعد ناگهان یک سر دیگر در حوزه دیدش قرار گرفت. بلافاصل صاحب سر را شناخت. استلا بود. لبخندی که بر لب داشت. دو طرف دهانش را کشیده بود و دو دندان نیشش در اندازه غیرعادی در معرض دید قرار گرفته بودند. استلا خیلی آرام حرف می زد. گویی به زبانی حرف می زد که به خوبی نمی شناخت. استلا پشت سر هم تکرار می کرد. سیمان؟ سیمان؟ منو میشناسی، ها؟ منم استلا دوستت استلا منو یادت نمیاد فریاد زجهی که ابتدا خفه بود اما بعد تا حد یک جیغ طاقت فرسا بالا رفت از دهان ترلکوفسکی خارج شد